بسم الله الرحمن الرحیم بعد از توقفی چند ماهه گفتیم بعضی از قسمت های قطر الندار رو کامل کنیم مونده بود از منصوبات بحث مستثنا. مستثنا آخرین منصوب از منصوبات هست که در این کتاب آورده است. ول مستثناء نواز حرف عطف هست میخواد که مستثنا رو ه به منصوبات ما قبل و مستفنا به الله میگه مستثنا به الله منصوب است. البته بعضی از انواش که در بحث انشاالله خواهیم گفت که کدوم نه ها. من کلام تام من موجب به الله منصوب است چه زمان زمانی که کلام تام باشه موجب باشه. برای اقهموندن تام، مثالی رو ذکر می‌کنم. جاء الطلاب الا سعیدا. در این مثال سعیدن مستثنا هست. استثناء شده از چی؟ از طلاب. به طلاب میگن مستثنا منه. اگر در جمله ما مستثنا منه ذکر شده باشه بهش میگن تام. اگر ذکر نشده باشه اون موقع مفرقه غیر تام مانند ما جاء الله سعیدون اینجا می‌بینیم که مستثنا منح ذکر نشده پس میگه مستثنا چه زمان منشوب هست؟ زمانی که کلام تام باشه مانند جاء الطلاب الله سعیدن موجب باشه بازم همین مثال یعنی منفی نباشه نهی نباشه استفهام هم نباشه مانند خود نفس مثالی که زدیم جاء القامو الله بکرن مثالی زده است از قرآن کریم نحو و منه الا قلیلم منهم نوشیدند آنها از اون آب جز اندکی از آنان خب اینجا جمله ما تام هست فشریبو منه موجب هم هست فشریبو این و زمیر جمع هست مستثنا منه قلیلا پس میشه منصوب چرا منصوبه اینجا مستثنان بود؟ چون هم کلام تامه مستثنان ذکر هست و هم موجب هست اگر موجب نبود فان فقد دل ایجاب اگر فقد ایجاب بود موجب, موجب نبود یعنی منفی بود استفهان بود نه بود ترجح البدل فی المتصل راجح مینست که ایراب بدل و به مستثنان بدیم در استثنای متصل استثناء متصل اون استثناءی هست که مستثناء از جنس مستثناء من هست مانند مثالی که ذکر کردیم جا الطلاب الا سعیدن جا القوم الا بکرن اما زمانی که از جنس مستثنا من نباشه مستثنا اون موقع منقطه است. مانند قام القوم الا حمارن اینجا حمار از جنس قوم نیست الذ منطقه است میگه فئن فقد ایجاب ترجح البدل في المتصل اگر موجب نبود راجح همین است بهتر و ارجح مين است که اعراب بدل رو بهش در نوع استثناء متصل معن ما جا القوم الا سعیدون اعراب بدل این است که مستثنى مستثنا بدل جز هست از مستثنا منه همون اعرابی که مستسنام منه داره هم داره چون همیشه اعراب تابه همون اعراب متبوع هست مثالی آورده است نحو ما فعلوه الا قلیل منه اینجا ما فعلوه مستسنام تام هست مستثنا منه که واو ذکر شده ولی موجب نیست چون ما یه نافیه روش اومده ما فعلوه منفی هست جمله کلام منفی هست موجب نیست ما فعلوه الا قلیل منهم پس بدل ارجح همین است که اراب بدل رو گرچه در غیر قران جائز هست که نسب رو ولی ارجح بدل بودن هست و نصب رو فی و ارجح همین هست که در منقطع چی بشبیدیم؟ اعراب نسبو بشبیدیم مانند ما قام القومو الا حمارن ارجه اینا که نسب بشبیدیم این ده بنیتمیم نزده بنیتمیم و وجبه این ده حجازیین هم میگن واجبه که منسوبش کنیم إجازيان بيغان ما قام القوم إلا حماران واجبك منسوب كنين دقين نميتونين بيغان ما قام القوم إلا حمارون إرابة بدلو بش بدين چون من قطئ ولی تميم ها بني تميم بيغان عرجعينك منسوب كنين اما مشه رفو هم بش داد نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن كإنجا اتباع منصوب شده چه شده؟ چرا؟ چون منقطع هست زن از جنس علم نیست اتباع زن از, ج... از جنس علم نیست علم مستثنا منه ما هست ولی زن که ازش استثنه شده اتباع از زن از جنسش نیست لذا منصوب شده و این نصب بنی تمیم ها میگند ارجح اینه که منصوب بشه ولی میشه رفع هم بشداد اما حجازی ها میگن نه واجب اینه که باید منصوبش قرار داد پس بر اساس قول بنی تمیم میشه گفت ما قام القوم الا حمارن و میشه گفت الا حمارون اما حجازی ها میگن ما قام القوم الا حمارن واجبه مالم یه تقدم تا زمانی که مستثنا قبل از مستثنا منه ذکر نشده باشد فن نسبو اگر مستثنا قبل از مستثنا منه اومد فن نسبو اونجا دیگه واجب است که مستثنا رو منصوب کرد مانند ما قام الا زیدن القومو اصل جمله چونین است ما قام القومو الا زیدن بلند نشدن قوم جز زید اگر ما در, در ترتیبشون رو به هم بزنیم یعنی ابتدا مستثنه رو بیاریم بعدش مستثنه من رو واجبه که دیگه به منصوبش کنیم چرا؟ چون مستثنه منصوبه اعراب بدل رو هم بهش نمیتونیم بدیم بدل اعراب تابعیت رو میگیره و تابع همیشه بعد از میاد. لذا اینجا که قبلش اومده دیگه نمیشه تابعش قرار داد و واجب است که منصوب بشه خب معلم یه تقدم معنی شمیر هست فیهی ما تا زمانی که مستثنا قبل از مستثنا نیامده باشد اگر اومد فن نسبو. واجب است که منصوب باشه اعراب موقع تعین میشه دیگه نحو قولی مانند این مثال مثالی که ذکر کردیم و این مثال و ما لی الا آل احمد شیعتون در مدح آل رسول صلی الله علیه و سلام هست و ما لی الا مذهب الحق مذهب دو جمله اللغاز ترکیبی به اینه مثل همان جالب است ما ناویه است لیا جارو و مجرور هست متقدم به خبری هست که حصف هست الا حرف استثناء هست آله چه هست؟ مستثناه ما هست مستثنا از شیعه هست مالی شیعتون در اصل جمله با تونین می بود مالی شیعتون الا آله احمد من گروهی ندارم انصاری ندارم جز آله رسول صلی الله علیه وسلم پس اینجا اومده مستثنا رو قبل از مستثنا منه آورده مالی الا آل احمده شیعتون اینجا واجبه که منصوبش کنیم و همین هست منصوب هست پس آل مستثنا هست از جایی که قبل از مستثنه منه اومده منصوب هست شیعتون هم مبتدای مؤخر هست جمله بعدی به اینهی ترکیش چونین هست و مالیه الا مذهب الحق مذهبون و من؟ روز از مذهب حق مذهب دیگه ای نداره. بله پس گفته بود مستثمه به وسیله الله در کلامی تام باشه و موجب منصوبه اگر موجب نبود تفصیلاتش رو گفت الان میگه اگر چونه تام نبود او فقدت تمامو یا زمانی که تام بودن مفقود شد تام نبود فعلا حسب عوامل اینجا دیگه مستثنا بر اساس حسب عامل اعراب میگیره. دقت بفرمایید ما جاء الله سعیدون شما فرض کنید دین الله رو از اینجا برداریم سعید اعرابش چی میشه؟ ما جاء سعیدون فائل میشه؟ این الله همومده هیچ نقشی داره ما جاء الله سعیدون اینجا ما جاء ای. چی چیزی نیاز داره فائل؟ پس سعید شد مرفو ما رأی تو الا سعیدن اینجا مفهول به نیاز داشتیم چون تو فائل است ما رأی تو ما مرار تو الا بسعیدن پس اگر استثناء ما کلام ما تام نبود اگر موجب نبود تفصیلاتش بیان شد اگر موجب نبود اعراب مستثنا بر حسب عامل است نحو و ما امرونا الا واحدتون ما مای نافیه هست امرو مبتدار مضاف هست نا مضافون ایلی واحدتون خبر است امرو نا و ما امرو واحده واحدتون خب ویسا ما مفرغان این نوع استثناء که تام نباشه یعنی مستصنا منح ذکر نشده باشه بهش مفرق میبیند این شد از بحث مستصنا که خیلی مختصر براتون توضیح دادم امیدوارم این بحث شیرون رو فهمیده باشیم مختصرا دوباره ذکرش میکنم اگر مستصنای ما به وسیله الله از کلام تام و موجب بود منصوب هست مانند، جا المسلمون الا زیدن مسلمان ها آمدن جز زید جا المسلمون هم تامه مسلمون مستثنامه انه زکر شده هم موجب منفی نیست نه نیست استفهام نیست پس منصوب شد ولی اگر اومد موجب نبود اونجا عرجه همین است در متصل که اعراب به بدل رو یعنی بگیم ما جا المسلمون الا زیدن مسلمون که مرفوع زیدن رو هم مرفوع کنیم که گفتیم نصب هم جائز است یعنی ما جا المسلمون الا زیدن ولی عرجهش اونه که نصب بشندیم بلکه اعراب بدلو بشبیدیم اعراب بدل هرچی مستثنان هر اعرابی داشت به مستثنامند بدیم ما جا المسلمون الا زیدن ما رعتلمسلمین الا زیدن زیدن اینجا مسلمین چون منصوبه اعراب بدل هم که به زید بدیم باز هم منصوب میشه اعراب نصب هم که خودش منصوبه به این شکل و اگر چنانچه هم موجب تام تا نبود بر حسب عامل است مانند ما جاعت الا ما رئت الا زیدا ما مررت الا بزید این شد از بحث مستثنا به وسیله الا در یک حالت باید منصوب شود زمانی که تام موجب باشه زمانی که موجب نباشه میتونه اعراب بدلو بگیره و میتونه منصوب باشه در متصل و در منقطع حجازی ها میگفتن باید منصوب بشه و زمانی که تام نباشه اعراب بر اساس اعراب مستثنائی بسیله الا بر اساس حسب عامل است. موفق و پیروز باشید.